با سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم که امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست سر وحشتناک یکی بود یکی نبود روزی پادشاهی زندگی میکرد که فقط یه دختر داشت ولی خب خیلی دوست داشت که یه پسر و یا لاغل یه نوه پسری هم داشته باشه که بعد از اون تاج و تخت رو به اون به ارث بده اما اون درباره این موضوع با آدم دانایی مشورت کرده بود که اون گفته بود پسر دخترش اونو میکشه این خبر اونقدر شاهر ترسونده بود که تصمیم گرفته بود هیچ وقت اجازه نده که دخترش ازدواج کنه چون اگه نوه نداشته باشه بهتر از اونه که نوش اونو بکشه به همین خاطر اطرافیارش رو خبر کرد و از اونا خواست که گودالی تو زمین درست کنن و تو گودایی زندان بسازن و بعد دخترش رو تو اون گودال زندانی کرده بود هیچ مردی دختر رو و دخترم از دیدن همه کس و همه چیز محروم شده بود. اون فقط میتونست از پنجره ای که روی سقف زندون بود، آسمون و ببینه. بنابراین دخترک مدام چشم به آسمون داشت و به ابر نگاه می کرد و با خودش فکر می کرد که چطوری میتونه از اون زندون آزاد بشه. یه روز اینجوری به نظرش رسید که آسمون باز شده و مقداری طلا روی پنجره سقف افتاده. مدت زیادی از این ماجرا را نگذشته بود که دختر متوجه شد بار پدرش از شنیدن این خبر خیلی ترسید و عصبانی شد چون فکر می کرد که نوش به زودی به دنیا میاد و اون رو میکشه. شاه که دلش نید دختر و نوش رو بکشه، اونها رو توی یه صندوق بزرگی گذاشت و به دریا انداخت تا شاید اونها تو ساحل سرزمین دیگه نجات پیدا کنن و دیگه نوش نتونه که آسیبی بهش برسونه. به این ترتیب دختر پادشاه و کودکش روزها و شوا رو تو دریا و تو صندوق گذروندن. کودک نه از موج میترسید و نه از باد چون نمیدونست که این چیزا به اون آسیب میرسونن و خلاصه که آروم بود. پسا همیشه این ترانه رو براش میخون. کودک دل بندم چقدر آسوده میخوابی. مادرت خیلی مراقب توست. آسوده بخواب در این صندوق تنگ در این شب تاریک. تو می توانی به خوابی و صدای شکست ها و فریاد باد شب را نشنوی. در رخت خواب نرمد با آن صورت زیبا ناله های مادر و صدای ریزش اشک های او را بشنو. بالاخره صبح روز صندوق به ساحل سرزمین رسید و همونجا کنار ساحل موند. مردی که از اونجا عبور میکرد صندوق دید. و به زحمت در صندوق رو باز کرد و با تعجب فراوان دیدش که یه خانم زیبا به همراه یه کودک درون صندوق هستند. مردم و مادر و فرزند رو به خونه خودش برد و به اونا خیلی مهربونی کرد اونقدر از کودک نگهداری کرد تا یه مرد جوان شد درست موقعی که پسر در اوج جوونی و قدرت بود پادشاه اون سرزمین به مادرش علاقمند شد و از اون درخواست ازدواج کرد. اما پادشاه میدونست که شاهزاده خانم هرگز از پسرش جدا نمیشه. به خاطر همون پادشاه نقشه کشید تا از دست اون پسر خلاص بشه و نقشه این بود. تو سرزمینی نه چندان دور از اونها ملکه ای در حال ازدواج بود. شاه گفت که همه افراد مملکت باید برای اون ملکه هدیه بیارن روزی که مقرر شد همه به قصرفتن بعضیا جام‌های طلا بعضیا گردنبند دستبند و بعضیای دیگه هم پای زیبایی هدیه آورده بودند اما پسر شاهزاده خانم چیزی نداشت که برای شاه ببره با اینکه که مادرش دختری پادشاه بود ولی چیزی نداشت که بهش بدم به خاطر همین شاه به پسر گفت حالا که تو چیزی نداری لاقل برو و سر وحشتناک رو برای من بیار پسر بدون اینکه فکر کنه گفت من نمیدونم شما درباره چه سری صحبت میکنید اگه این سر, سر یه آدم زنده باشه چی بعد برای اون توصییت دادن که در جای دور ستا خواهر زندگی میکنن این سه تا خواهر زنای و وحشتناکی هستند که بالهای طلایی دارند و در بین موهای خودشون مار پرورش میدن دو تا خواهر بزرگتر اونقدر زشت هستند که هر کس به اونها نگاه کنه در درجا استخون میشه اما خواهر کوچیکتر صورت زیبایی داره و قرار شده پسر سر اونو بیاره این کار کار آسونی نبود پسر از شنیدن اینکه باید چنین کار دل دلخراشی انجام بده خیلی ناراحت شد ولی تصمیم گرفته بود که سر قولش بایسته بنابراین یک روز غروب از قصب بیرون اومد و به تنهایی مشغول قدم زدن و فکر کردن شد او در کنار همون ساحلی قدم میزد که صندوق خودش و مادرش تونجا تو پیدا شده بود روی یه تخت سنگ نشست و فکر میکرد که چجوری باید این کار شروع کنه. یه مدت که گذشت حس کرد که کسی شونش رو تکون میده. برگشت و دید مرد جوونیه که به نظر میامد پسر پادشاهه. مرد جوون یه خانم زیبا و قد بلندی رو همراه خودش داشت. چشمای آبی زن مثل ستاره ها میدرخشید. اون زن از مرد قد بلندتر بود. مردی تیکه چوبی تو دستش بود که روی اون ذرات طلا دیده میشد. دوتا مار تلاییم به اون پیچیده بودن. مرد از پسر پرسید که چرا ناراحته و پسر بهش گفت که باید بره و سر وحشتناک رو بیاره و نمی دونه که این کار پرخطر از کجا شروع کنه. بعد زن شروع به صحبت کردن کرد و گفت که این یک قول و پیمان احمقانه است ولی اگه این پسر جوون غذ هم خورده باید این کار رو انجام بده و بعد پسر به اونها گفت که اگه راه این کار رو بدونه از انجام اون ترسی نداره زن گفت که برای کشتن چنین زنی با بالهای طلایی و پندره فلزی و بریدن سر او تا چیز لازمه اول یه شنل سیاه که اون با پوشیدن اون نامرعی بشه بعد یه شمشیر تیز که بتونه آهن رو هم ببره و بالاخره کفش هایی که اون بتونه با اونها سریع بدنوید یا اینکه پرواز کنه پسر به اونها گفت که نمیتونه چنین چیزهایی رو از کجا پیدا کنه و اصلا ممکنه نتونه خوب از اونها استفاده کنه جوون کفشای خودش رو در آورد و گفت تو میتونی از این کفشها استفاده کنی و سر وحشتناک رو بیاری ولی بعدا اون رو به من برگردون با این کفش تو میتونی مثل پرندهها روی سهراها و دریاها پرواز کنی تازه خود کفش راه رو بلده و تو رو به مقصد میبره البته راههاییم هستن که این کفش بلد نیست مثلا جاده های اون طرف دنیا تو باید از اون جاده هم عبور کنی و به دیدار سه خواهر بری اونا انقدر پیر هستن که روی هم فقط یه چشم و یه دندون دارن تو باید با مهارت و احتیاط یکی از اونارو رو بگیری و اونقدر نگه داری تا بقیه نشونی سپری باغ رو بهت بدن اونا خودشون شمشیر تیز و شنل تاریکی رو هم بهت میدن و میگن که راه جاده های اون طرف دنیا کجاه؟ بعد اون خانم زیبا گفت همین حالا راه بیفت و لازم نیست که از مادرت خدا کنیم کنی این کارها باید سریع انجام بشه این کفشا خودشون تو رو به سرعت به خواهر پیر میرسونن پسر کفشا رو پوشید و از اونا تشکر و خداوزی کرد. زن و مرد ناپدید شدن و پسر نفهمید که اونا به کجا رفتن. او یکم بالا پرید تا کفشا رو امتحان کنه. اون مرد درست گفته بود. اون میتونست به نرمی یه پرنده بپره. کفشا اون رو بالای دریاهای های سرد، سرزمین های گرب جنوب و از بالای سر مردم که با بیخیالی به زندگیشون مشغول بودن میگذرون اون از بالای رودها و دریاها و سرزمینهای یخی و برفیم میگذشت تا به انتهای زمین رسید جایی که همه آبها یخ زده بودند و هیچ انسان یا گیاه یا حیوونی اونجا زندگی نمیکرد پسر اونجا در یک قصر یخی سه خواهر پیرو پیدا کرد اونا تنها موجودات زنده اون سرزمین بودن. موهای اونها به سفیدی برف بود و اونقدر آروم حرف می که آدم فکر می کرد دارن خواب می بینن. نفسهای یخزدهشون مثل ابر در فضا شکل می گرفت. در ورودی غار خیلی تنگ بود و به سختی می شد از بین اون به داخل رفت. اما پسر به کمک کفشاش به راحتی این کار انجام داد و به داخل قار رفت. او منتظر مون تا یکی از خواهرها به دیگری گفت: "خواهر چی می‌بینی؟ آیا زمان‌های قدیم برگشته؟ نه خواهر. پس چشمش رو به من بده، شاید من بفهمم چه کسی اومده." بعد خواهرش چشمش رو در تا به اون بده که پسرک جستی زد و چشم رو از دست اون گرفت. ین پیر زنگ خواهر پس چشم کو اولین پیرزنگ گفت من که اونو دادم بهت خواهر. سه بمین گفت شما چشمو گم کردید حالا ما دیگه نمیتونیم بازگشت زمانهای قدیم رو ببینیم. بعد پسر از اون غار سرد بیرون رفت و بلند بلند شروع کرد به خندیدن. پیر زن ها با شنیدن صدای خندش آه و بلند شد چون فهمیدن که کسی چشم اونها رو دزدیده. اونو نمیتونستن هیچ کاری بکنن. عشقاشونم فورا یخ میزد و به کف قار میفتاد. هر ستای اونو از پسر میخواستن که چشم رو به اونها برگردونه. البته وضعیت اونها واقعا طوری بود که پسر دلش برای اونها میسوخت. پسر به اونها گفت فقط در صورتی چشم رو به اونها میده که نشونی پریهای های باق رو به اون بدن. اونا فهمیدن که پسر میخواد بره و سر وحشتناک رو بیاره. اولش نمیخواستن که نشونی پری ها رو بدن ولی بالاخره مجبور شدن و بهش گفتن باید به جنوب بره و اول از سرزمین سمت چپ و بعد دریای سمت راست عبور کنن. اون وقت به سرزمین پریها میرسه. پسر بعد از گرفتن نشونی چشمی رو به اونها برگردون و منتظر بازگشت زمانهای قدیم موندن اونا. پسر با کفشای جادویش راهی رو که اونها گفته بودن طی کرد و بالاخره به سرزمینی رسید که پر از درخت بود و پریها رو اونجا پیدا کرد. اونا ستا زن بسیار زیبا بودن یکیشون لباس سبز یکی سفید و دیگری قرمز به کرده بودن اونا در اطراف درختی که می سیب سیبهای طلایی بود می چرخیدن و آواز می خوندن. آوازشون این بود دور تا دور سیبهای طلا، دور تا دور آن ما میچرخیم. ما از روزگاران قدیم دور این درخت افزون شده میچرخیم. ما دور تا دور آن میگردیم. بهار سبز است و همه چیز جریان دارد و باد دریاها را می نبردد. هرگز تعمی از میبه های تلایی نیست تا عصر نوبین طلایی از راه برسد. خیلی از درختان از گلوله می روین. و خیلی از شکوفه‌ها از ریشه پژمرده میشوند خیلی از ترانه ها گنگ هستند می شکنند مثل یک توده گل. مگر اینکه اصر نوین از راه برسد، دور تا دور درخت طلا، دور تا دور آن ما میچرخیم و خزه ها هم میرقصند، در تابستان و زمستان. در آتش و سرما آواز خانده می شود و قصه گفته می شود ما هم میچرخیم، خواه موثر، خواه غیر موثر دور تا دور ریشه درخت جادوگر پریا برعکس پیر زنا بودن و از دیدن پسر خیلی خوشحال شدند و با مهربونی ازش استقبال کردند. و بعد ازش پرسیدن که برای چی به اونجا آمده پسر به اونا گفت که برای پیدا کردن شنل تاریکی و شمشیر تیز به اونجا میاده اونا اون دوتا چیزی رو که پسر خواسته بود همراه یه کیف دستی یه سپر و یه شمشیر تیز بهش دادن دادن تیغه شمشیر از الماس بود اونا شمشیر رو به کمر پسر بستن و شنل رو روی سرش انداختن و بهش گفتن که حالا هیچکس حتی پریان نمیتونن اونو ببینن. بعد پسر شنل رو کنار زد و پریا آش خودو بزی کردن و براش آرزوی موفقیت کردن. بعد پریا به چرخش خودشون دور تا دور درخت طلا ادامه دادن چون وظیفشون این بود که تا رسیدن عصر جدید از این درختها حفاظت کنن پسرم شنل و سرش گذاشت و شمشیر رو به کمرش و سپر رو به شونش و راه افتاد و رفت اون کنار یه رودخونه سه تا زن وحشتناک رو پیدا کرد که زیر یه درخت سپیداری خوابیده بودند و های خشکیده درخت روی اونها میریخت. های طلایی و پنجه های فلزی نشونه خوبی برای چنگ اونا بود. دو تا از اونها درست مثل پرنده ها سرشون رو به زیر بالهاشون پنهان کرده بودند. مارهایی بین موهای اونها از زیر ها پیدا بود. خواهر کوچکتر بین دوتا تا خواهر دیگه خوابیده بود. اون به پشت خوابیده بود و صورتش رو به آسمون بود البته که چشمش باز بود پسر نمیخواست به صورتش نگاه کنه می‌ترسید که استخون بشه اون تصمیم داشت بدون اینکه وقتش رو تلف کنه سر اون رو ببره یکم یک جلو رفت و سپرش رو برداشت و طوری نگه داشت که زن وحشتناک رو میدید ولی اونا پسر رو نمی‌دیدن پسر بازم جلو جلو تر رفت و در یه لحظه شمشیرش رو در آورد و سر اون از تنش جدا کرد. بعد به سرعت سر رو برداشت و داخل کیفش گذاشت و از اونجا فرار کرد. تو همون موقع دو تا خواهر دیگه از خواب بیدار شدن و تو هوا پرواز کردند ولی نمیتونستن که پسر رو ببینن چون شنل تاریکی رو دوشش بود. خوهرها تا بالای ابرها به دنبال پسر اومدن. اونا اونقدر به پسر نزدیک شده بودن که براحتی صدای اونها رو پسر میشنید که به یک دیگر میگفتن اینجاست نه اونجاست شاید از این راه رفته. کشت های تندرو خیلی به پسر کمک میکرد به طوری که خواهرها بلاخره نتونستن مدت زیادی رو اونو دنبال کنند. سر از دست اون دو تا خواهر خلاص شد به سمت راست رودخونه رفت و سعی کرد که سرزمین خودش رو پیدا کنه همون جوری که از بالا به پایین نگاه میکرد یه صحنه خیلی عجیبی دید یه دختری زیبا تو بالای آب‌های دریا به یک نیزه زنجیر شده بود دختر اونقدر ترسیده و یا خسته بود که ممکن بود هر لحظه روی زنجیری که به کمرش بسته شده بیفته پسر خیلی براش ناراحت شد و رفت و کنارش ایستاد وقتی شروع کرد با اون صحبت کردن دختر سر رو بالا کرد و کمی به این طرف اون طرف نگاه کرد انگاری که صدای پسر اون ترسونده بود پسر تازه یادش افتاد که شنل تالیکی هنوز روی دوششه و دختر نمیتونه اونو ببینه فقط صداش رو میشنبه بنابراین شنل رو برداشت و روبروی دختری استاد اون زیباترین جوانی بود که دخترت تو عمرش دیده بود چهره خندان، مهای تلایی و چشمای آبی پسرم با خودش فکر میکرد که این زیباترین دختریه که تو جهان وجود داره به این ترتیب پسر با شمشیر تیزش زنجیر اونو باز کرد و ازش پرسید که چرا اونجاه و به چه دلیل اینجوری گرفتار شده؟ دختر گفت که اون دختر پادشاه اون سرزمینه. اونو به اونجا بستند تا حیوانهای عظیم و جسه اونو بخورن. چون حیوانها هر روز میان و یه دختر رو میخورن. تو همون لحظه یکی از حیوانهای دریایی بیرون اومد و با یه حرکت دختر رو گرفت. پسر که میخواست هرطوری شده به اون کمک کنه فورم سر وحشتناک رو از کیفش بیرون آورد و جلوی حیوان گرفت. تا چشم حیوان به اون سر افتاد استخون شد. دختر آزاد شد و استخون اون حیوان هنوز هم تو دریاهای. بعد از اون پسر و دختر به قصر پادشاه یعنی پدر دختر رفتن. تو قصر همه داشتن گریزاری می کردن چون فکر می که اون دختر مرده. اونا اصلا باورشون نمیشد که دختر برگشته باشه شاه و ملکه نمیدونستند که چطوری از پسر تشکر کنم. تو همون موقع ازش خواستن که با دخترشون ازدواج کنه به این ترتیب اونا مراسم خیلی باشکوهیم ترتیب دادن و پسر و دختر با هم ازدواج کردند بعد از مدتی میخواستند که به سرزمین پسر برند پسر شمشیر تیز و شنل تاریکی و کفش تندرو رو همونجا توی یه تپه پنهون کرد چون نمیتونست به همراه عروسش به آسمونا پرواز کنه. خلاصه عروس و داماد راه افتادن تا به سرزمین پسر برن. وقتی به سرزمین پسر رسیدم هرچی گشتن مادر پسر رو پیدا نکردند. بعد از مدتی فهمیدن که مادر از اون سرزمین فرار کرده چون پادشاه بهش پیشنهاد ازدواج داده بوده و بعد از شنیدن جواب منفی میخواسته که جون مادر پسر رو بگیره به همین دلیل اون سرزمین رو ترک کرده بود البته اگه پادشاه باعث نمیشد که پسر اون زن به یک بار ناپدید بشه شاید اون قبول میکرد که با پادشاه ازدواج کنه ولی با این کاری که پادشاه از پسر اون زن خواسته بود زن کاملا از ازدواج منطرف شده بود اون زن درست نمیدونست که پادشاه پسرش رو به کجا فرستاده و فکر میکرد که پسرش ناپدید شده. خلاصه مادر رفته بود و شاه با شمشیر به دنبال اون بود. پسرم هم به دنبال مادرش میگشت که یهو یه اونو پیدا کرد. اما قبل از اینکه فرصت پیدا کنه باهاش حرف بزنه پادشاه با شمشیری به دست از راه رسید. پسر سپرش رو جلوی اون گرفت و فریاد زد: من به تو قول دادم که سر وحشتناک رو برات بیارم. حالا هم به قولم عمل کردم. پسر سر وحشتناک رو از کیفش بیرون آورد تا به پادشاه نشون بده. به محض اینکه پادشاه چشمش بهش افتاد، تو همون لحظه تبدیل به استخون شد. مردم با دیدن این صحنه دور اونا جمع شدن و خوشحال شدن که چنان شاه ظالمی دیگه وجود نداره تا بر اونها حکومت کنه. اونا از پسر خواستند که پادشاه اونا بشه. اما او قبول نکرد و گفت که باید مادرش رو به قصر پدربزرگش ببره و به اونها گفت که چه کسی برای این کار مناسبه؟ همون مردی که اولین روزی که مادرش تو صندوق به ساحل رسیده بود به اونا کمک کرده بود. اون گفت که اون مرد آدم مهربونیه و شاه خوبی برای سرزمین شما میشه. به این ترتیب پسر به همراه مادر و همسرش به طرف سرزمین مادریشون رافت افتادند. در راه اونها به دربار پادشاهی رسیدند. در موقع ورود اونها پادشاه مشغول اهدای جوایز به بهترین دوندگان، کشتی‌گیرها و دیگر ورزشکارا بود. پسر تصمیم گرفت که قدرت خودش را امتحان کنه. وقتی نوبت اون شد، بهش گفتن که باید یه حلقه فلزی رو پرتاب کنه. اون حلقه رو محکم پرتاب کرد و حلقه داخل جمعیت رفت و به مردی خورد و اون مرد درجا مرد. او مرد مرده پدر بزرگش بود که از ترس اینکه مبادا یه روزی نوش برگرد و اونو بکشه به سرزمینی ناشناخته رفته بود و بین مردم عادی زندگی میکرد. خلاصه پادشاه با اینکه تلاش زیادی کرده بود تا توسط نوش کشته نشه باز همین اتفاق افتاد و توسط نوش کشته شده بود. بعد از این حادثه پسر همراه همسر و مادرش به سرزمین اصلی خودشون برگشتند و سالهای سال در اونجا سلطنت کردند و بالاخره پس از اون همه دردسر تونستن زندگی راحتی داشته باشند. امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشید. آیا تا به حال آرزو کردیننگه؟ سرزمین های سهر زفر کنیم؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی میکنن کانال هزار افسان همون که جایی که داستان های ای و اسطورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری